کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده داستان پادشاه سرما، روزی روزگاری، زن دهقانی یه دختر و یه دختر خونده داشت. دختر هر کاری دلش میخواست میکرد و از نظر مادرش هیچیکی از کارای او اشتباه نبود. اما دختر خونده بیچاره مشکلات زیادی داشت و برای هر اشتباه کوچیکی مجبور بود معذرت خواهی کنه. هر چقدر زحمت میکشید کسی از او تشکر نمیکرد. در واقع او دختر خوشقلب و مهربونی بود و حقش بود سر تا پاشو طلا بگیرن اما نامادری اونو دوست نداشت دختر بیچاره صبح تا شب گریه میکرد چون زندگی آروم در کنار اون زن براش غیر ممکن بود بالاخره زن بدجنس تصمیم گرفت هر طور شده از دست دختر خوندش راحت بشه و به پدر او گفت پیرمرد. از اینجا بیرونش کن اونو به جایی بفرست که چشمم به قیافه نحسش نیفت و صداشو نشنوم اونو بیرون بندسته از سرما حلاک شه هرچه پیر مرد بیچاره خواهش و تمنا کرد زن حرفش رو پس نگرفت و مرد هم جرأت نداشت رو حرف او حرفی بزنه به همین دلیل دخترش رو در صورت می نشوند و بدون اینکه حتی یه پتو بهش بده تا کمی گرم بمونه اونو به دشت خالی و وسیعی برد گونهاش را بوسید او رو ترک کرد بعد به سرعت به خونه برگشت تا شاهد مگه دخترش نباشه وقتی پدر او رو تنها گذاشت دختر بیچاره زیر یه درخت کاج نزدیک جنگل نشست و اشک از چشماش سرازیر شد ناگهان صدای ضعیف شنید که می گفت این پادشاه سرماست که از درختی به درخت دیگه می پره و بشکم میزنه. بالاخره او به درخت کاجی که دختر زیش نشسته بود رسید. بشکنی زد و کنارش روی زمین نشست. به صورت زیباش نگاه کرد و گفت: «خب دختر خانم، میدونی من کی هستم؟ من پادشاه سرما هستم. پادشاه بینی های یخ زده و قرمز شده. دختر؟ با صدای مهربون و لرزون گفت سلام بر شما پادشاه بزرگ آیا اومدید که منو ببرید؟ پادشاه گفت آیا بدنتون گرمه؟ خانوم جوون دختر با اینکه تمام بدنش میلرزید جواب داد کاملا گرمه پادشاه سرما بعد پادشاه سرما به طرف دختر خانم خم شد صدای بشکنها بلندتر شد گویست ها چاقو و نیزه به هم میخوردند او دوباره پرسید خانم بدنتون گرمه؟ آیا گرمتون هست؟ دختر با اینکه از شدت سرما لبهاش کبود شده بود با مهربانی گفت کاملا گرمم قربان پادشاه سرما دندونهاش رو به هم فشار داد و در حالی که چشمهاش برق میزد بشکن زد و صدای بشکنها هر لحظه بلندتر میشد و برای آخرین بار پرسید خانوم هنوز هم بدنتون گرمه خانوم زیبا هنوز هم گرمتون هست دختر بیچاره که همه بدنش خشک و بیحس شده بود فقط تونست بگه کاملا گرمه پادشاه لحنه مهربون دختر و شکایت نکردنش از سرما دل پادشاه سرما رو نرم کرد و دلش برای او سوخت او پوستینی دور بدن دختر پیچید و پتوی روش انداخت بعد ای به او داد که داخلش جواهرات زیبایی بود و لباس گرون قیمتی که با طلا و نقرت از این شده بود هم داخل جعبه قرار داشت. دختر لباس پوشید و از همیشه زیباتر شد و پادشاه سرما همراه او روی سورتمش که شش اسب سفید به اون بسته شده بود نشستند. اما در همون زمون نامادری بدجنس منتظر شنیدن خبر مرگ دختر بود و تابوتی را برای مراسم تطفین آماده کرده بود او به شوهرش گفت پیرمرد بهتره به دشت بری و جنازه دخترتو پیدا کنی و دفنش کنی به محض اینکه پیرمرد خواست از خونه بیرون بره سگ کوچیکی از زیر میز پارس کرد و گفت خوشحال باش که دخترت زنده خواهد مون و دختر او همین امشب خواهد مرد زن فریاد زد زبونتو گاز بگی یا این کلوچه رو بخور و از این به بعد بگو دختر این زن خوشبخت و ثروتمند خواهد شد دختر این مرد از سرما یخ زده و مرد است اما سگ کلوچه را خورد و گفت دختر این مرد تاجی بر سر خواهد گذاشت دختر این زن قبل از اینکه ازدواج کنه خواهد مرد پیر سعی کرد با کلوچه دل سگ رو به دست بیار و بعد او رو کتک زد اما همچنان جمله های قبلیش را تکرار میکرد در با صدای بلندی باز شد و صندوق بزرگی وارد شد و پشت اون دختر خونده با لباسی مجلل و چهره‌ای شاداب ظاهر شد چشم‌های نامادری لحظه‌ای به او خیره موند و بعد به شوهرش گفت پیرمرد فوری اسب‌ها را به سورتمه ببند و دختر من هم به همون محلی ببر که دختر خودت را برده بودی به این ترتیب پیرمرد دختر رو زیر همون درختی گذاشت که دختر خودش رو گذاشته بود یک لحظه بعد پادشاه سرما از راه رسید نگاهی به دختر کرد و گفت خانم آیا گرمتونه دختر با عصبانیت جواب داد این چه سوال احمقانه مگه کوری رو نمیبینید دست پاهام یخ کردن؟ بعد پادشاه سرما جلوی او بالا پایین پرید و سوالش رو تکرار کرد و باز هم کلمات زشتی از دختر شنید و بالاخره عصبانی شد دندانهاش رو به هم فشار داد و بشکن زد کاری کرد که دختر از سرما بمیره و اما مادر دختر که در خونه انتظار بازگشت اونو میکشید صبرش تمام شد و به شوهرش گفت پیرمرد سورتمه رو بیرون ببر و دخترمو به خونه برگردون اما مواظب باش موقع برگشتن صندوق رو گم نکنی اما سگ زیر میز شروع به پارس کردن کرد و گفت دختر تو از سرما یخ زده و صندوق جواهراتی هم گیرش نیومده. زن گفت اینقدر دروغ نگو یا این کیکو به خورا بگو دختر این زن با یک پادشاه قدرتمند ازدواج خواهد کرد. و همون موقع در باز شد و زن برای دیدن دخترش بیرون دوید. و به محض اینکه دستش به بدن یخزده دخترش خورد خودش هم یخ کرد و مرد.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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانهای صوتی atsine مهران دوستی